أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد به خداوند بخشنده مهربان الاسلام را این کتابی است که بر تنازل کرده کردیم تا مردم را از تاریکی هاوی شک و ظلم و طغیان به سوی روشنایی ایمان و عدل و صلح به فرمان پروردگار شان درآورید به سوی خداوند عزیز و همید الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد هم من خدواك آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست وای بر کافران از مجازات شدید الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد هم آن ها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مردم را از رافع الله باز می دارند و میخواهند خواهند حق را منحرک سازند آنها در گمراهی دور هستند وما اغسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم الله من يشاء ويهدي من يشاء و هو ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا حقایق را برای آن ها آشکار ساخت. سپس خدا هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را بخواهد هدایت می کند و او توانا و حکیم است وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ بِذَذِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَفُوءٍ ما مصارى بأوجات خود فرستاودي. و دستور دادیم قوم خود را از ظلمات به نور بیرون آر و ایام الله را به آنها متذکر شود در این نشان هاییست برای هر صبر کننده شکر گذار و ایز قال موتا لقوم اذکرون الله علیکم اذ من آل فرعون، إذ أن جاكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بلاء من وربكم عظيم. و خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید زمانی که شما را از چنگال فرعون رهایی بخشید همانها که شما را به بدترین بچه عذاب می کردند و پسران تان را سر می و سنانتان تان را برای خدمتکاری زندمی گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از طرف پروردگار تان بود و ایت تأذن ربکم این بخاطر بیا هنگامی را که فروادگارتان اعلام داشت که اگر شخص گذاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم زود و اگر کفران کنید مجاساتم شدید است. وقال موسیٰ این تفرو انتم و فی الارض جمیعا فإن الله لغني حميد اسرائیل گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید به خدا زیان نمی رسد چرا که خداوند بی و شایسته ستایش است ألم يأتكم نبأ الذين من قدركم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فيه أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما قرسلتم به وإنا لدي شك مما تدعوننا إليه المريب أو يا خبر عنها كبير شما بودند وشما نرسيدا قوم نو و عاد و سمود و آنها که پیش از ایشان بودند هم آنها که جز خداوند کسی از آنان آگاه نیست پیغمبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند ولی آنها از روی تعجب و استهزا دست بر دهان گرفتند و گفتند که ما به آنچه شما معمور آن هستید کافریم و نسبت به آنچه ما را به سوی آن میخوانید تردید داریم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 رسولان آنها گفتند آیا در خدا شک است خدایی که آسمانها و زمین را آفریده او که شما را دعوت می کند تا گناهان تند را ببخشد و تا موعد مقرنه شما را باقی گذارد آنها گفتند ما اینها را نمیفهمیم همین اندازه می دانیم شما انسانهای همانند ما هستید و میخواهید ما را از آنچه پدران مان میپرستیدند باز دارید شما دلیل روشنی برای ما بیاورید قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بسر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوك پیامبرانشان با آنها گفتند درست است که ما بشری همانند شما هستیم ولی خدا بند بر هر کس از بندگانش بخواهد نعمت می بخشد و ما هرگز نمی توانیم معجزه ی با فرمان خدا بیا بریم و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل تو کنند وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ چرا ما بر خدا توکل نکنیم؟ با این که ما را برا هاوی سعادت من رحبری و ما بسور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند وقال الذین كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا ربهم ظالمین کسانی که کافر شدند و پیامبران خود گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود اخراج خواهیم کرد مگر اینکه به آگین ما باز کردید در این حال فرورکارشان به آنها وست یفر استاد که من ظالمان را هلاک می کنم ولمسکننکم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف و شما را در زمین بعد از آنها سکونت خواهیم بخشید این معفقیت برای کسی که از مقام عدالت من بترسد و از عذاب من بیمناک باشد و استفتح و قاد كل جبار عمد. آنها تقصیر فاتح فی رزق اند، و هر گردن کشمان خرفي نامید و نابود شد. <تصفيق> می ورای جهنم و یوسق مم. عدونبار او جهنم خواهد بود و آب بدبوی متعثی نوشان نمی شود. يتجعله ولا يكدوسيهه و يأتيه الموت من كل مكان وما هو بموت ومن ورائه عذاب غلي و زحمت جرعه جرعه آن را سر می کشد. و هرگز به میل خود حاضر نیست آن را بیاش و مرگ از هر مکانی به سراغ او می ولی با این همه نمی میرد، وقتن با باقی آن عذاب شدیدید. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاطف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أعمالك ثانيك بابا بعد قارشان كافر شدند همچن در برابر تنباد، در یک روز طوفانی آنها توانایی ندارند، کمترین چیزی از آنچه را انجام داده اند، به دست آورند، و این گمراکی دور و درازه الم اَلَمْ ان اللَّهَ این یشه یزهركم و جدید آیا ندیدی که خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده؟ اگر اراده کند شما را میبرد و خلق تاتهی می آفرد و ما ذلك علالله بعزیز و این کار برای خدا مشکل نیست وَبَرَدُو لِلَّهِ يَمِيعًا فَقَالَ رَبُّ عَفَا لِلَّذِينَ سَكَبُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ سَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُرْنُونَ عَنْ النَّعْدَابِ قالوا لو هدانا الله لهدیناكم سواء علینا اجزعما ام قبرنا مالنا من میص و در قیامت همۀ آن در برابر خدا ظاهر میشوند. در این هنگام زعفا به مستكبران میگویند ما پیروان شما بودیم آیا شما حاضرید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 أن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا شیطان هنگامی که کار تمام می شود می گوید خداوند به شما وعده حق داد و من هم به شما وعده دادم و تخلف کردم من به شما تفلط نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما پذیرفتید این مرا سرزنش نکنید خود را سرزنش کنید نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من من نسبت به شرک شما در باری خود که از قبل داشتید بیزارم و کافرم مسلمم ستمگارم عذاب در دا دارند دارم و ادخل الذین آمنوا و الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار و فيها بإذن ربهم تحییتهم بی ها با آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و باغهای بهش داخل میشوند باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری جاودانه به ازن پروردگارشان در آن میمانند و تحییت آنها آن سلام است الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ك شجرة طبة أصلها ثابت وفرعها في السماء آیا ندیدی چگونه خداوند كلمۀ طیبه و گفتار پاکیزه؟ را به درخت پاكیزه تشبیه کرده که ریشۀ آن در زمین ثابت باشگاه آن در آسمان است توتی اوقلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون می خود را هر زمان به اذن پروردگارش می و با خداوند برای مردم مثلها ها زند شایت متذکر شدند و فان گیرند و مثل کلمه خبیثه که شجرت خبیثت من فوق الارض ما من قرار و همچنین کلمه خبیثه را به درخت ناپاک تشبیه کرده که از زمین برکنده شده و قرار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 خداوند کسانی را که ایمان آوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم می دارد. هم در این جهان و هم در سرای دیگر و ستمگران را گمراه می سازد و خداوند هر کار را بخواهد و صلاح بداند انجام می دهد. آلمت و اینالذین بدّرُن عمت الله كفرَن وَأَحَلُ قَوْمَهُمْ دَعَوَالْبَوَارَ آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و جمعیت خود را به بد بدّارالبواور یعنی نیستی بناآبودی کشام دند جهنم يصلونها و بس القار جهنم است که آنها در آتش آن وارد می شوند و بدقرارگاهی است و لله الله انزادل نیو عن سبیله قل تمتعو فإن مصيركم إلن ناو آنها برای خدا شبیهانی قرار دادند تا مردم را از که او منحرف و گمراه فسان بگو چند روز از زندگی دنیا و لذات آن بهره گیرید اما سرانجام کار شما به سوی آفتش دوزخ است کل عباد الّذین آمَنُوا یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً و ینفقو مما رزقناهم سرا و علانیتم من قبل این یعنی یوم لا بیوم فیه ولا خلال بگو با بندگان من که ایمان آوردند نماز را برپا دارند و از آنچی به آنها روزی دیداد این پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آن که روزی فرا رسد که نه آن خرید و فروش است و نه الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم خداوند همان است که آسمان ها و زمین را آفریده و از آسمان آبی نازل کرده و به آن را خارج ساخت و روزی شما قرار داد و کشتی را مسخر شما گردانید تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند و نهرها را مسخر شما کردند. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در کارند به تسخیر شما در و شب و روز را مسخر شما صاد و آتاكم من كل ما سألتمو و این تعبون امت الله لا تخصوها إن الإنسان نظرهم کفا و هر چیزی که از او تقاضا کردید به شما داد و اگر نعمت فوق خدا را بشمارید هرگز آنها را احسان نخواهید کرد انسان بسیار ستمگر و خیلی ناصفات است و اید قال ابراهیم رب جعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام یاد آورید زمانی را که ابراهیم گفت. پربرکارا این شهر را شهر امنی قرار و من و فرزندانم را از پرستش بطها دور نگاه دار رب اینهن اضللن کثیرم من الناس فمن تبعنی فا اینهو منی و من عطانی غفور رحيم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 في واد غير ذي زرع انبتت كالمحظوم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيم الصلاه فجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون پرورگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین به آب و علفی در کنار خانه‌ای که حرم توست ساکن ساختم سانمات را بر پای دارند تو قلبهای گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزیده شاید آنان تو را به جای آبرند ربنا کَتَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ چرا ما پنهان بیا آشکار میکنید و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع حمد خدای را که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید مصداما خدای من دعا را <تصفيق> میشنود رب جعلنی مقیمت صلاة و من ربنا و تقبل دعا مرا برپا نماز قرار ده و از فرزندان من نیز چونین کن پروردگارا دعای ما را بپذیر ربنا و فردی و نوالدی و للمؤمنین یوم الحساب من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را روزی که حساب برقا می شود بیامز ماست و لا الله غافلا عما يعمل انما ما يؤخرهم ليوم تنسف فيه الابصار وكمان ما خدا از کار هاج غافل است نه بلکه کیفر آنها را تأخیر انداخته برای روزی که چشم ها در آن از ترس و وحشت از حرکت باز می مهضعین مقنعین رؤوسهم لا یرتدو ایلیهم قرفهم و افئیدتهم هوا گردنها برف راشته سر به آسمان کرده حتی پلک چشمهایشان بی حرکت می و دلهایشان به کلی خالی می وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اقسمتم من ما و مردم را از روزی که عذاب علافی به سراغشان میآگرد بترساند آن روز که ظالمان میگویند پروردگارا مدت کوتاهی ما را مهلت ده تا دعوت تو را بپذیریم و از پیانبران پیروی کنیم مگر قبلا شما سوگان یاد نکرده بودید که زوال و فناوی برای شما نیست. و تکنتم فی مساکین اللذین غلبهوا امفسهم و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الأمثال. و در رهايش آنان جاي شده اید. که برخیشتن ستم کردند و به شما آشکار شد که چگونه با ایشان رفتار کردیم و برای شما از سرگذشت پیشینیان مسلحا زدیم ولی پند نگرفتید و قد مکرون وعند و عند الله مکرهم و این کان مکرهم منه الجبال آنها نهایت مکر خود را بکار زدند و همه مکرها با توسعهایشان نزد خدا آشکار هر هرچند کوها با مکرشان از جا برکنده شبد فلا تحکبن الله مطلیف وعده رسله این الله عزیز زن وگمان ما بر که خدا بعدی را که به پیامبران اشتالد تخلف کند چرا که خدا بند قادر و منتقم است. یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسماوات وبرزو لله الواحد القهار برند روز که این زمین به زمین دیگر و آسمان ها به آسمان ها دیگر تبدیل می شوند و انگاه در پیشگاه خداوند و قطعار ظاهر می کردن و تر المجرمین یومئذ مقربنین فی الاسفاد و روز مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینیم لباسشان از قطران یعنی مادهی چستنده بدبوی قابل اشتعال است و صورتهایشان را آتش میپوشاند. پوشاند الله كل نفس ما کسبت. ان الله سريع الحساب تاخد هر کس را هر آن انجام داده دا جزا دهد چرا که خداوند سریع الحساب است هذا بلاء للناس ولينزو به وليعلموا انما هو الههم واحد این قرآن ابلاغی است برای عموم مردم تا همه انظار شوند و بدانند او معبود واهد است و تا صاحبان مغز و اندیشه پند گیرند